رژیم شاه امام را در خرداد سال 42 هجری شمسی دستگیر کرد. امام پس از مدتی از زندان آزاد شد. امام بعد از آزاد شدن چه کرد؟ امام باز هم با سیاست های ضد اسلامی رژیم شاه مخالفت کرد. او مخالف تسلط بیگانگان بر کشور ایران بود. پس امام خمینی همچنان به مبارزات خود ادامه داد بلی به همین خاطر رژیم شاه امام را در آبان سال 43 به ترکیه تبعید کرد ایشان چه مدت در ترکیه بود؟ امام خمینی حدود یک سال در ترکیه بود و سپس به عراق تبعید شد امام در زمان تبعید چگونه با مردم ایران ارتباط داشت؟ در زمان تبعید امام خمینی، نامه‌ها، اعلامیه‌ها و متن های ایشان در ایران پخش می‌شد. ایشان چند سال در عراق ماند و در آنجا چه کاری انجام می‌داد؟ امام سیزده سال در عراق بود و در حوزه علمیه نجفت فقه و علوم اسلامی را تدریس می‌کرد. پس از پایان تبعید در عراق امام به ایران آمد نه ایشان برای ادامه مبارزه خود مجبور شد اراق را ترک کند و به فرانسه برود